بودایا که در میکده ها بکشاین گره از کار فرو بسته ما بکشاین اگر از بحر دل زاهد خودبین بستند دل قوی دار که از بحر خدا بکشاین به صفای دل رندان سبوهی زدگان بست در بسته به مفتاح دعا بکشاین نامه تعذیت دختر رز بنویسید تا همه مغبچگان زلف دوتا بکشایند دیسوی چنگ ببرید به مرگمه نا تا حریفان همه خون از مجه ها بکشایند در میخانه ببستند خدایا مپسند، که در خانه تزویر و ریا بکشایم حافظ این خرقه که داری تو ببینی فردا که چه زن زیرش به دقا بکشایم